فرمانت خدای تعالی به محبوب ترین بنده اش که پیغمبر است فرمود الائکلذین هداهم الله به خدا هم مقتدی رو میشموره ابراهیم و نوح و کی و کی و کی بعدن میگه اینها کسانی هستند که خدا اینها رو هدایت قران میفرما داد الائکلذین هداهم الله اینها رو خدا هدایت کرده فبه هداه و مقتده به هدایت اینها اقتدا کن و دنبال اینا برو ولی کن یکی از بزرگان میفرماید اینجا نگفته دنبال اینا برو گفته دنبال هدایتشون برو احترام به بر رسول الله رو اینجوری گذاشته نگفته فبه مقتده فرموده و به خدا و مقتده خود فیغمبر مقتده است نه مقتدی احترام به رسول الله اینه نه فرمودی که به اینها اقتدا کن فرموده به خدای اینها اقتدا کن خدای اینها رو پیروی کن به هر حال بنابراین شاید این آیه یه شاهدی برای این توجیهی که برای اون آیه شریف اول کردیم الا الذین هداهم الله اینا رو خدا هدایتشون کرده یعنی خدا دست اینها رو گرفته و رسونده به مقصود و به خداها مقتده تو هم به این هدایت اینها اقتدام بکن خب حضرت صادق میفرماید خدای تعالی به عز خلقش این چنین دستور داد و اوهی ان انطبع ملت ابراهیم و باز خدا در قرآن میفرماید ما به تو وحی کردیم که پیروی کن از طریقه و ملت ابراهیم پس بنابراین راهی نیکوس اصلا شاید یکی از مهمترین چیزهایی که این همه در روایات رسول الله و عمه اصرار شده دوستی اهل بیت این دوستی اهل بیت من میکشونه که دنبال اونا برم اگه دوستشم واقعا دوستشم روش روش دیدین مثلا فرض کنید به این که اون وقتایی که زیادتر بود حالا شاید خیلی کم شده باشه کسی مثلا پهلبونی رو دوست داشت میدید پهلبون ها را میرن این رو مثلا اون رو میخواست این مثلا فرض کنید که این چیزا میگن چیزا این تو ها مثلا نمایش میرن فرض کنید بله هنر پیشه ها رو دوست داشت مثل اونا رق می پوشید مثل اونا هشت میزد مثل اونا لباس میپوشید پوشید مثل اونا را میرفت این قهریه این علاقه این چنینه این حید به ما تأکید کردند که دوستی اهل بیت داشته باشید دنبال اونا باشید اونا رو دوست داشته باشید روش اونها میزان ما باید باش به خدا همکتد عرض می شود به اینکه لا در حد... این تمام شد این حدیث در حدیث دیگر عن رسول الله صلی الله علیه وآله لا تکونو امعن امع همزه و نیم و عین یعنی من لا رعی له کسی که از خود رعی ندار امع نباشی یعنی بی اراده و بی نباشید. نباشی این ان ظلم الناس و این اصا الناس اصا ما ببینیم مردم بد کردن ما میکنیم اگه دیدیم ظلم کردن ما میکنیم و به قول خودمون خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد نلا تکونو امعار این چنین نباشید رعی داشته باشید نظر داشته باشید و اگه میخوایید دنبال کسی باشید دنبال نیکوکارون باش امیر سلام الله علیه در نعجل البلاغه میفرماید عرض میشود به اینکه که تعصد نبی یکل ات هر به پیغمبر پاکیزه و پاک تعصیب بکن. فَإِنَّهُ اُصْوَةٌ لمن تَعَصَى او اصفه است برای هر کسی که تأسی خود بکنه و احبب العباد الالله الله نبیه محبوب ترین فرد پیش خدای تعالی اونیست که به پیغمبر خودش تأسی میکنه و او رو میزان خودش قرار میده و لقد کان یا کل و علال پیغمبر روی زمین می نشست و یجلس سجل جلس مانند بندگان مینشست و یخصف نعله بیده و یرق او ثوبه بیده لباسش رو خودش وصل میزد کفشش رو خودش به واسطه خودش وصل میزد و میدوخ عرض میشود به اینکه و یکب الحمار العاری گاهی روی اولاغ برهنه سوار میشد و گاهی هم یه نفر رو پشت سر خودش سوار میکرد. کرد اینا تمام مجموعا جهات مختلفی هم ممکنه داشته باشه ولی تمام کاشف از تواضع حضرت هست خود رو برتر و بالاتر از دیگران نمی بیند است حضرت و کانه و یکون و ستر علا باب بیته یه پردهای در خونش آویزون کرده بودند. وقتی وارد شد و در این پرده تصاویر بود مثلا عکس گنجیش بود عکس درخت بود عکس گنجیش بود امثال زی ازالک قالا یا فلانه خطاب کرد به یکی از زنهاش غیبیه انی اینو وردار از جلوه چشم من فانی فا اذا نظر تو الی کرد تو دنیا و زخاوفه من هر وقت رو یاد دنیا میافتم. تأثی کن به رسولت امیر تو تو نجل براغه میفرمایده نفرماید تأثی کن به رسولت. خب در اینجا هم در وسیع یدنامه به فرزندش حسن میفرماید پسرم یکی از محبوب ترین چیزها پیش من این است که به آبا نیکوکار و سالحی نت کنی ببین روش رسول چه بوده ببین روش همزه چه بوده ببین روش جعفر چه بوده بندگان اونی که خدا روش اونها رو میزان قرار بده و مکرری کرره رو کردین این خطاب به حضرت حسن است و یا که عنی و یا بر بنده گفتن نه برای حضرت حسن خیر تمام شد عرائز بنده اب غزو ناف الله من یقتدی به سیعت المؤمن ولا یقتدی به حسنته ترین بندگان پیش خدا این است که از یه مؤمنی گناه میبینه میره دنبال گناه و میگه این کرد منم میکنم اما نیکیهای مؤمن رو میبینه دنبالش نمیره یه بنده مؤمنی حالا یه وقت دستش در رفت یه گناه کرد دنبال این میره میگه این آقای کرد پس منم میکنم ولی نیکی های ایروپی رو نمی کنه ابغز اون ناسه الله من یقتدی به المؤمن ولا یقتدی به حسنته پس بنابراین باید به بندگان صالح اختدا کرد یه آقایی که اسمش سعد بن عبدالملک بود ظاهرا از طایفه نمیدم پسر عبد مروان بود یا از همون طایفه بنی مروان بود حالا خلاصش. وارد شد خدمت حضرت شاید ابی جعفر سلام الله علیه و در حالی که داشت گریه میکرد حضرت فرمود چرا داری گریه میکنی ارز کردی ابنا رسول الله دا داشتم میومدم تو خونه شما متوجه شدم که من از شجره ملعونه هستم شجره ملعونه فی القرآن تو روایات به بنی امیه تفسیر شده من از شجره ملعونه هستم حضرت بهش فرمود انت عموی منا اهل البیت تو عموی هستی ولی از ما هستی نشنیدی که خدا در قرآن میفرماید به ابراهیم در ب... از قول ابراهیم که ابراهیم عرض میکند فمن تبعنی فإنه هو مننی هر کی دنبال من آمد از منم تو دنبال ما آمدی عموی یون من نا اهل بید تو عموی هستی ولی از ما خانواده هستی و لذاست که لقب ای رو خود امام تغییر داد اسمشو گذاشت سعد الخیر همه بهش مردن سعد ابن موسن عبدالملک فرض کنی یا سعد چی چی از اون قبیله بنی امیه هزبت بهش فرمود سعد الخیر اسمشو سعد الخیر گذاشت انتا امبی یون من اهل احلال بگی این اقتدا کن به نیکام و اگه اقتدای به یه کردی به نیکیاش اقتدا کن به بدیاش اقتدا نکن این بهترین چیزی که حضرت فرمود بهترین چیزی که به تو سفارش میکنم اقتدا کردن به آقا الصالحین و بندگان فرو خدا اللهم محمد و این دسته روایت هم اگه میخوام بنویسین جاش رو بنویسین عرض میشود به این که لا طریق علیل اکیاس من این جاش رو پیدا کردم اونم نمیدونم چونه ننویشتم جلد دوم بهار جدیده صفحه دیویستو نمیدونم چند یادم رفتش من اینجا پیدا کردم از تو بحار ولی ننویشتم اینجا یادم رفت که خلاصه جلد دوم به هار جدید تأثب نبی یک الات جمله نهج بلاغه صفحه پونسد نهجل است. صفحه پونسد نهجل بلاغه, بلاغه فیر به سعد الخیر که فرمود انت اموییون صفحه شیستد جلد یک سفینه. ابغز الناس إلى الله من یخصدی به المؤمن دیویست هشتاد و جلد هده چاپ قدیم بهار لا تكونوا انعن صفحه چهار و سی جلد پنج ناسخ خود کلمات رسول الله صلی الله علیه بار